داره مزار داره مزار داره مزار اللهم افرق نار یا الحمد ارت و خلای سای برس این موارده اجماع در شیعه خصوصا در خیلیت مسائل که بعدها زیاد شد رو به نظر خودمون چه کرده اصولا به طور کلی جنبندی کلی ما اصولا وقتی که میبینیم اجماع از همین قرم هم بسلا چهارم و پنجم در مکتب بغداد مطرح است و در مکتب قم کلا مطرح نیست ادعای اجماع به معنای مسطلح یعن اتفاق جمعی نقعا خوب خیلي بعیده مادام یک مکتب به استخدار فتوان رو میده چطور ما ممکن است ادعای اجماع در این مصاره رو کنیم؟ یک مکتب البته تیران عرض کردیم تاثیر مکتب مجموع تا الان تا الهده کردیم در معارف ما ده در در در در فکر نیست مکتب به رواز آثار فقیر اونکه الان مهنده ماست بیشتر تأثیر داره تا مرتبه کن. به هر حال نمیشه بگیم مراد از اجماع این اجماع مستلعه یعنی اعتبار بله این کاشوه از این هست که در یک فتره قبل از این دو ازدهی از تفاقات و تفاقات علیه بوده که فقط تساواری که نمارد کردیم احتمالا همین که تا فقط رضا باشه احتمال این هست اما اینکه که واقعاً اتفاقی باشه فیلمان بر و اختلاف مدنا ادعای اجماع نمیشه و توضیحاتش هم کافی شد که اجماعات سیر مرسوس دارد یک حساب داره اجماعات شیل سوسی در خلاف حساب دیگری داره مثل و امکان صرف زهره و ادعای اجماعشون روی جهر دیگر ادعای اجماع ازامه که یکی از پرسیر گذارتر هستن اجهر اون هم نوطریلی یکی درخی یکی درخات رونا بله در کلمات صاحب مداره که هم اجموع در کلمات مرمول صاحب جواهر شاید بیشتر میشه گفت و یه و دعوی اجموع تر شده به نحیصول مجموع دلیل روشنی برای بکیهت اجموعی این معنی حالان در دست نداریم بله اجموع دعوای اجموع هست از یک نفر منبه خوبیه میشه نقبول کرد یعنی اگر ادعای اجوان شده خوصا چند نفر ادعای اجوان کرد در طورات مختلف این منشه که بیشتر با فکر بکنیم اگر نمیشه تو اون مسئله سریع تسم گیری کن که اصحاب مختلف به ما با اختلاف زد و با اختلاف طریقشون به یک نتیجه رزیدن این منشه این میشه که بیشتر فکر بکنیم و ولی بکنیم. ارز کردیم این نیشه آمیان تنگیره او تا 80% به تصورات ما پیدا شده 20% از آقاً مجبور نمیدونیم به کجا برمیگرده اما خب تا اون 80% شد میتونیم تحقیل بکنیم. این خلاصه بحث اون که دو روز قبل یک جمع بردی که برد اون و مجموعه شواهر چون فقط گفته شد یک عرضیابی صمیحی همو کنیم به اصلابان ما اختیار نهایی و بعد بریم بحث شعبت عرض به نسبت سلوغ خبر و نسبت به فتوای خبر مضمون خبر سه مقضایی کردی میشه تصور کرد. یک رو به شواهد مقلاعی دو رو به شواهد دینی یعنی از کتاب رسوندن سه رو شواهد مذهب یعنی به شواهدی در طاقه رو جود در شیعه امامیه. اثنان کردیم و اگر مدنم اضافه بکنیم چه نوزا من یک جمعه و هست بکنم ترسیم به اما را به بحث سجور خبر و شواهد اوخلایی ترس کردیم و استاد مستاد فیگر به جمعه احتمال دارم تاکید چون حجر خبر سجور اوخلایی میدونن و این سیره اوخلا هست امضا شده این توضیح بدن و ایشان خواهد آمد که به نظر ما سفیلی در بغلا در حجیت اموری که ذاتن تریجه سرفن خیلی معقول نیست چون حجیت باید یک نوطه باشه مثلا میگن قول بود از قاضی حجت به خود دارم این مساورات میگرد بود دارم به خود دارم به خود قاضی به خاطر اما در جایی کشه اینکه ترید سر کدفت مکنیم هیچی آنی ندارد نشکه یکیسه خوال رو دارد همون بازه ترید این رو خاصی درش داشته باشه روشن نیست اصلا بحث نداریم با ما. اصلا معلومی است که باقلا در اینجور امور که ترید صرفم تحبود و تحبود است در موارده اگر تر خود فیده تر خاطر نظام این راست. مثلا تر اگر بگن قرد خود جدید میوانشن این کاری کردیم خب یقین یعنی داشتن قردشن بگن نه تو بگرد اول نکنیم بده این رد سؤال بکنیم ببینیم این رد سا در حویت این, این هم شمده ها تکرار بکنیم خطا خود روشه کنم جدید برمی کنیم اختلاف نظام بید. اگر انسان به خبر سره عمل نکرد به مجال اختلاف نظام نمید چون که به شبر سره ها یعنی <تصفيق> میگه اگر دیگه نبود جد به ساقه تراری. و هم اگر شباهد جمع کنه از عمل کرد شد اختلاف نظام نظام که که این چیزی در روشه. و اغلا کردیم و اسمیان و علم و که و این هم درسته که به صاحبات که از اسبان مصوبه اینه قطعیه اینه درسته اما بحث که همیشه نیست مثلا بسید خبر صحیح نیست اما بزرگان اسبان ما بوان عمل نکردن الان هم بگه بهشون تو شه نه و نه عمل نیستن مصوب پیدا نمیشه برای آزم واقعا نمیشه خبری با اینها سؤال ما اینجاست بحثی که ما با و استاد داریم اینجا چه دلیلی داره ما این خبر عمل رو وقتی وصوب بگاه نمیشه هست افتی که وصاقت در خیلی از ممارد موجه وصوبه بحث نیست اما اگر وصوب وصاقت بود و وصوب, وصوب چرا به خبر اشکال ما قومت که این در توضیحات شروع به نمو پسند لیکن مهل ها نمیشه قرار مقردی رو ما حصف بکنیم این این مطلب یعنی ما کلن بگیم توی این مسائل کاری به مسائل مسائل و به مسائل مسائل خبه مسائل هست. خود تاریخی هست خودمسدر هست من اون اصطاق بردن رو مسائل را نه مسائل همه جزه قرار مقردی نیست مسائل را هست این که آیا راهی مثلا مثلا مثلا تفکر شاز داره شاز نه یا روازه شاز نه اینا به نظر ما تماما تأثیر میداره مصدر از بعدم عامل زمان خیلی میگونه از سره یعنی خبر سره با الان در تو خیلی راحت بشونید اما وقتی بخواید الان برداد شیعه تبرقه با رسول به موجود که در یک کتاب آنازه بشنید مثلا دکتر بلندی مجیدی دو میزه بحث مکاسب این رو مشکلتر میشه یعنی این سیره و در این یوگی ها کار رو مشکلتر میبینه واسه این زمانیت بزیاد شد مثلا دیگری هم هست و سلسی دیگری هست. ما از آن بعض اجلی ها دارم این صدر اما خب در که از این موادقه ایشان به راست داره هیچی از نه مرگی تو و اینو خیلی از یون وشی میگردون به رایی آسو خیلی از شکل توسی هم دربو کرده این نکنه این نه افل ایشان گرد صدر نه کرده خب این روی تنها به سیره و خلای دارتونی میپرونه خواهی نیست ایشون خیلی فقط نه نه و ساقت نه صدر نه درست به این فکر اغلاییش هم روشان نیست سره از اما شاز میاره احتمال بکن ولیدار مرموم نجاشی و قده از خودمان ما مثلا میگن فرانسه در تون که این هسته در نوری از از مراسی از باز بحث دیگری که دا همه جنبه های اغلایی داره دا تحبوتی نیست فرسته مثلا ممکنه که این روایه بحث باشه همه وقتی مواردش شدید موحلی رو در دیگر مرسل رو ترمیاد زیاد حدیث در یک کتاب یک جوره همون حدیث در کتاب دیگر مرسل اون همینطور مصدر ممکنه همینطور دارد از سیده همینطور مرسل به آخری من نیم خود بشن از ما به نظر ما قرائن و قلائی برای قصود بسوط خوبه نه برای که من با مستان هست قراره نو بردادی مجرم رو کنی شواهد رو بردادی مجرم رو کنی و یکی پیدا این خوبه دینی به خبر هر جه امدهش آده دینی اینه دیه اینجا از ما خواست کن به نبین ما شما داریم به خب بنظرم ما از آیات و روایات تعبد در این یک اما مثلا از همه آیه منطوبت نمیاد که اگر شخصی حاسب بود برمار در خبار سوقوف بکنیم و رو مثلا سر رم باشه زارمش اینطور دیگه مثلا شخص شار رو یا در سر از یا و تبدیل کنن توضیح بود. این مقدار قبول کرد ولی ازا برای اخبار کسانی که لاغبالی هستند ولی گفته شده اصلا ارتفاع به رو یا رو یه مندار رو پاسد دارن مذاهر رو پاسد که در پس ما در بخش شواهد دینی خیلی نیاز نداریم اون تشجید حضبات برمان ثابت نشده اصولا اونه که به ذهن ما میاد در مورد شواهد دینی شایع ازیا به همون ارتفاع دو اقلالی چیزه خاصی ندارده خوب چه خصم کنیم فرما آن موسیقی شما خبر هر را تحباده قدوم بکن ما موظره این اعضا به همون سیره والا دارده خاصی نداره هیچ چیزه تحباد مثلا این چند سال را ستر از شون فاسق احسیان خدا کرده به انسان دیگه احسیان ببینید که هم سیره اوغلاییست نقطه خاصی توش نداره لذا یه یعنی نمون روح مطلب رو خلاصه رو و بگیم تفصیلش دو اولاد قربانه روح مطلبی ندید در مجموعی آیا، ما تبده خاصی از شاهد ندیدیم همونی در وجهه سیره از به شاهد اول شاهد سیرون مجموعه شاهد اصحاب که مثلا قبر در این که رو نحر در شده عمل شما این علامتی و حاکت داشتی داره دیگر فتوایی که مشهور بشه، انصاف ردیه خود این مسئله بلکه نقله شاهل هست ها را از اونم مختلفه اجمالا اجمالا میشه این که میشه از شماسی باقی داری در اونه بشه رضا من از از زمان خبر خب از که چون قرار سنگی و مزد کردن خب مشهور با در از ها گفتن در شوارد صاحبه مقدنی در جامعه شیعه بوده مقدن من از هر نقطه فندی شیش ها توضیح اون تاریخ خاصی است که ما شیعه داریم نقطه فندی شیعه اینه به خاصی دیگرد بودن در بودن به زمانت این کتاب‌ها ها افراد زیاد نبودن حتی دلیل برای که کتاب ها دیر خواب دهت بعد از خواب دهت میکردن و هر حال این وقتی که ما الان فصلیم بعد از این کنت سا در ایران داریم قطعا این وقت نبود یعنی این به این وقت هم ها نبود اصلا که که طور مثل یا مستدر کتناسی ذریعی به جمع کنید این ها نموده صافت این خصوصیت صارف است. و لذا این رو با ما رو شبارد طارقه کنیم تا من شبارد طارقه هم مثل یک جور صدو یک جور اگر شرخ کلومی و صدو بیارن شبارد بقیه هم اما اگر شکل صوصی از تحضیل رس شواهد بیارن این توضیحاتشو داریم شرارن ارز کردن کتاب کافی و کتاب پدید گذیرشی هست <تصفيق> یعنی مرموم و مرموم صدوب پر فرقید روایی و روی اعتقال هم در عمل اما کتاب تحضیب استحصاب گزینشی نیست فراد و غورده هم بینه باید جمع میکنه کنه یک جمع اون فرقای هم نشون آقایی که هزار درمارد برداشت رو شد لذا کتاب تحزیم و استفسار گوزیم اینکه بیان کتاب هر بره مثلا در تحزیم آمد علامات سرقته اصلا کتاب تحزیم کتاب گوزیمشی نیست کتاب استفسار کتاب گوزیمشی نیست استفسار که تلکیز مانند از کتاب تحزیم متعبود شده درماریات مارست استفسار شده نوزور شده درماریه از چار چه ده؟ از در جده ایشون بابندی کرده در هر بار روایات و اونی که که کرده از غالب قاله این که که تو تنظیم هم آمده بعضی وقتا تو استفسار نقصهی که که در تنظیم نیست پس موارد دارم که نقاطی در استفسار برمزنه که در تنظیم نیست و من توضیح دادم این هم صابقه داره هم لاحقه داره هم حساب داره این مسئله خصوصا دلیل مشکل طاقفی بقول مرموم خودشف در اول تعظیم شد نه میکنه که یکی از صادا و شلیف فلا ایش کنیش که یکی رو سنیش و با از با پروار کرد از هر این محلی اصلا متعارد نرم بکنه شفت خود مرموم شف محلی بگه مرموم اصلا سنی شد بعد این که بود از کاروز شما از در وقت دارید چیستا میشه ما ساله همه شیدید صورتو کنم درست این که این دوست کتاب با هم دیگه پرمی کنند صدق با هم پرمی کنند آخر بخصی کاروزی هاش اینجا نید این شوارد مذتبیه از که اینجا افراد و تفریقی آن شواهد شباهد و که تحسیار مذهلی رو نگاه می مگر به حد تسال رو مثل مرمو نایی گیرد رو میگرد زیاد یادی از صفحان مشکول همینه شباهد مذهلی رو میگرد اون شباهد اقلاعی سهر بودن نبودن اون هر کار کار ندارم انصاف قصده اینکه به نظر ما هر دو افراد و تفریقه. هم شواهد ما معارضات در درباره‌ی به مقدار کافی از شده نشده و شواهد مذهبی ما هم تقریبا قابل شناسایی اینطور نیست که شخص روی تعهد باشه خیلی قابل تعهد این دو تا طرف سعی کردن به تعهد بر بیان هم هر موقعی هم کسایی در مقابلشون هستن سعی کردند به تعهد بر به, به ما در هر دو جای تعبدی نیست شواهد اوللایی که تعهدش شواهد منطقه امام هم نقدار زیاد شهر خورد میشه برای مواده هم داره برایست این راجعه به بخش اول که صور داره و هم با مضمون مزمون, مزمون رو یک شواهد و آقلاقی راست داره انصابات هم شوارد با با قبول و قبول بکنید لکن اینطور نیست که مطلقا مثلا یک خیلی بعید است امامی این رو کرده این های دو میشه قبول اطلاح با زمین میشه اما شباهد دینی این چرا؟ این به خیلی محصیح بوده این استرش همون احضر به شباهد کتاب سنن در وقت صدور و تبرده شباهد کارساز نیست اما اینجا چرا؟ اصابتا کارسازه تو بخش مضمون فکی کارسازه میگم حتی تا اینجایی که دیگه افراد میکردن بسن خبر در قبول میگونی که مطابرت با کتاب سنن باشه مراد از مطابرت مضمونی روحش با روز قرآن سنت رو خوره قبول نمیده این شرکیه یا بازندهی قرآن کردن و شواجد سرمان که شواجد باشه این هم چرا که به اصطلاح عمل حساب به اصطلاح مطابق با قواد حساب باشه عمل حساب باشه تنبیه به نمون باشه پتواه نبود انصافا این شاهدن شاهده خوبیه لیکن اگر که از بس مهمتر تطریقه بشه مثلا از آمه ادامه کنه اجماع مشبور و از نگاه میگونیم تلقیه هست از زمان تا زمان زمانیش ها سرطه تلقیه مهموند لیکن این تلقیه اصحاب خیلی کار نیست این نیست که شما نازمیم تلقیه اصحاب تلقیه اصحاب ما در کلمات و حد و محض. صراحت هر دو باز داره نمیخواید یه خطا بحثو این راجبه از خلاصه الوهنا ای راجبه این که کدام شواهد رو دقیقا بشه هرام بکنیم و هر کدوم مورد رو اینکه به ما ثابت شواهد هست یه شواهد واقعی است هرن شواهد رو برای مواجهه تاریخ عرب مثلا چه شواهدی که مدعلا داریم ولی چه این باشه این این روشن نیست مثلا روانی هست که ایک زنی بارشو با آقایی یه دو جملی جمله رو شطورند و به اصطلاح زنی جیو اما در ناصره دیگه داره آرخش دو جملی تحفیر از در برو پرش به این این آقایی دو به اصطلاح اونچه این فارسی ماننده. اونی که متنه اولیش با آرخشه رو بوده از این که زن رسمی میرسی میده آیشتی بکنه که شوهرش بزن دیگه میل نه کنه در این جمعن شوهرش او اخیر این، مثلا ما با شواهد بگیم این متن بهتر تا اون هم امسا اوغیر دو جمعنی ما رو حدتر میفهمیم شخصا رو خودمون زنجیر بکنم خیلی رو حد اما نکته اجتماعی و اخیر دو جمعنی است نه اوغیر دو جمعنی دفر شواهد دینی هم انصافا قابل قبولی تو اینجا قابل قبولی خود من هم هست شده مثلا لا یوتند دو دموره این اما در روایات ما لای یقت در دو دموره این در همین آقایی که هزی بحثم عمره در اشتراف در فین حوستنی خلاف خلنی هیست حوستنی یهو من دیگه دعا فحلن این درتون عامه فنهلی حی صحبه محلی چون تو در مکان آهن یعنی در اون مکانی که من به اصطلاح محبوس بشن اون مکان مکان اغلال من باشه از عمر از اهام در بیا من چهره وایوچو فحلن اینه که من نشه فارسی تر باشه بقوله قوم هرگاه از تر باشه اما اونی که در موتون احرس و نتنون رو کرده هم آهده من خواهد محلی رو بزنی بسار بزنم این او سال من فمحلی حیسو هبستنی با قواعد عربی شیدی تر بر چون محل این محل احلام حیسو هم ظرف مکانه یعنی در هر جایی که من محلی محل روی من باشه محلی من از احرام در بیام این کنه هی فمحلی در روایات که ما آمده فاقای بلی خیلی هم کتابتش رو هم نزیدی که عنایه حاله پس بنابراین این نقطه رو در نظر ما در محض انصافا به این مراجعه کنیم. شامل اون خیلی تأثیر به نظر ما خیلی قابل ترشیم در محض خیلی قابل ترشیم از باید کار مشکلی هم هست که ما باید نمیشه مثلا پس یعنی بود در چه خورده ممکنه همون به یک متن واضحی آمده یا تو فتاهای شیخ سرون به یک متن واضحی آمده فتاهای بودن برای فهم دقیق متن خیلی محسن و که داره؟ مثلا الان همین حدیث از قاعده اقزام هستن قاعده اقزام رو رو اصحاب رو شیخ توسی منفردن نمی کردن که شیخ توسی از ما از محمد مسلم یجوز اما کل احضر ملت ما یستحلون خالده ارزام هر منتی که یکی دو حلال دونستن اون جایزه اون خالده از ما از زمان بیاند این رو ذکر همین حدیث با این سهراتو با این سهراتو با این با مراد ابن و علا در کتاب شریف کافی آمده یه جدی هم خود شیف توسی اوگه شیف توسی دوباره اوگه یه جا محابطه با کافی یه جا خودش اصلا دویجه از مزدریه در اون مزدری که از کافی آورده که از حاوم دارن یکی اوزاده ها احل کنه نمیده مایوستخلافون بگرد بکنی چه برد کنه یوستخلافون یعنی قسم بهشون بدن این موله دا قطاقت دارن وصد جدارگاه یهودی رو به صراط پسوندن مسیحی رو به انجیل باز معلوم یا این این دو سهلفون نگاه به در نقطه شیخ مای مایس کرده بود ورضا یه قاضی دیگه به قاضی کرد خود رو وعده خلا نداره دقت میکنه این شواهده مثلا ما وقتی نگاه میکنیم به شواهد مذهبی، شواهد مذهلی مذهل تقیید میکنه مایو سهرهون نه مایو سهرهون نصفه شیخ خلط بوده شهر. اشتباه میکرده نصفه شیخ خلط بوده برگشه یکی مورده به ایلال این یدیوز و علا وزیاد آنون میخوابیم که که شما عرض میکنم یک سر درادی داره این بحث مرد انصافاً در بحث مرد ما به حلث شاهد مراجعه میکنیم. هم شواهد و اقلالیی که ها در هم شواهد دینی و هم شواهد طرفی این خلاصه بحث خلاصه چون نه شواهد رو با هم دیگه ذهب کردی و عصیبا مبنی ما که همیشه میگیم تجمع شواهد مراد این در مقام استنباه یه از این شواهد رو با هم دیگه در درقاتی کنید و نتیجه‌ای گرفته بشه و میدان شواهد و ارزیابی شماهی در ملاقه مرزمون ارز خیلی بله دیگه اونم نقدر ملاقه اگر ثابت داشت مشکل بیشتر میشه دیگه اگر بخی مواقع نیتون بشه بله باید بعد بحث از بحث حجیت مذنه مرموع شیخ رساله که حجیت بود اول اصلاح که زن هوجی امروزه معمولی شد شام بالغ تر از کمتر شده رساله ایشان مسترکشند رسال رسال رسال تا رسال رسال رسال رسال که تابنا بوده رساله سال سال چهار سال رساله اول هوجیت اول نبوده اصلاح در رساله ایشان وقتی مقدماتشان هم میل به کردن شکلات کردن زن شده در دریای رساله ی دیگه مقاصد مغازه سالانه ات از زن شد این این داده. ارز کردم که بعد از این که بحث قطعه اتنبیات شد همون کردن من رو موشه متعرض زن کردن و تأسیس ارز کردن که لایه بزور عمل رو به زن. اون مواردی رو از او خارج کرده از عمل به زن. یکیش حجیت زواهر بود یکیش حجیت اجماع بود یکیش هم حجیت شهرته خارج هم حجیت خبر واحد یکی روزی که بلند حدیث 95 تا رو خارج شدن از عصاره تو عمل بتنه پس این چهارمیه حجیت شهرت چهارمی که خارج شده بعد مرحوم استاد دیگر کتاب هستان اجمال می‌خونم چون این مقاله خیلی معتبر بشه بعد 47 یا جلد 2 خود مصباح از صفحه 164 ببر استاد اول همه شهرت داشت به یکی شهرت روایی و این رو ما توزیر داریم من این نایی دیگران دارم مشبور اینطور شده الان در میانه علمای ما که شهرت رو به بسر... حتی شهرت معنی وضوره چیزی که ابهام نداشته باشه اونش مشهور میگن چون شهر سیفند چون شمشی تا در بلا پا و نمیدونی چیه درسته از از مثل از چیه اصلا شمشیه هست نیست وقتی شمشی رو در میاره معلوم میشه خیلی میگن از اون گرسه که شهرم ظاهرم کلمه شهر هم در لغت عربی شهر در اصطلاح لغت عربی اصاسا اصاس شهر شهر تلفیهی به اصطلاح خودش اصاسا شهر فاصله ما بین دو رویت اولین روحیت ما یعنی اولین بار که شما ماه رو میبینی که شبه بعد نیده امشب اولین باری که شما بعد از نیدن ما ما رو میبینی تا فاصله بعدی که باز ماه رو میدینیم برای اولین بار این فاصله نگر شهر در لغت عربی به نظر از کردیم اون چه که ما در زمان خودمون رو مثلا داریم به بروج مثل بهمن و اسفردوی نه که بهمن ماه میدیسند بحمن قدرته ماه نیست بهمن ماه نیست برشه اونی که ماهه هموزی هجه وزی هموزی و محرم و رو و مراد اصطلاح محرهی، محرهی از ما در اسطلاح نجوم ماه حقیقی یک ماه حقیقی عبارت هست فاصله ما بین درویه که هلال این فاصله ما بین درویه که هلال و اسطلاحا میگن ماه حقیقی یه ماه دیگم هست که بشینگه تلفیقی یه ماه دیگم هست یه شکنه اعتباری اعتباریه غالباً سیروزه یعنی دائما نه وقتی یه ماه حقیقی سیروز همش میگه مثلا 16 ماه تا 16 ماه دیگه این اصطلاحا ترجیحی میگه این اصطلاحات ما کلمه شهر در عین این معنود اصلش به خاطر وجود پر شب قبل ماه نیده حالا ماه رو دید واضح شد تا تصدیق یکبار ماه رو برای اولین بار ببینیم میشه ماه چند بار اعت کردم در اصطلاح منجمی ماه حقیقی ماه قمریه ماه شمسی ماه حقیقی نیست سال حقیقی سال شمسیه سال قمری سال 20. چون سال قمری اعتباریه شما ما موشون ماه و یک سال موشون دفت موشون قرار بود اما سال حقیقی سال شمسیه مثلا الان این لحظه رو در, در کجاست این اگر مساقه دیده دید کرده دو به همین لحظه که همه هسته سال نیسته پس سال حقیقی سوال شمسیس و ماه حقیقی ماه قمری یه بحث دیگه هم داره که اینجا جای دیگه به ازن الله حال و هرما کلمه شهرت از این جهب گرفته شده امری که واضحه و لذا اگر یاد و آرون باشه ما هرز کردنی سابره که به اصطلاح غیر از علم قد که در اصطلاح منطقی الان در کتاب ما متعارف به اعتماد راضیهی که احتمال خلاف در اشتاد نشه دو معن هم از سر پیش اوقلاه حجری که ت مع روفینی زهور ضوع یکی هم موضوع باید می چون معوم شع و دیگه بحثشون از وجیت فک فقط ما از سر این دو هم مثل هم یت به میار اوقل مثل په و با همون میار حالا وارد اون بحثی الان که دومت میشه الیه حالا مشور ا باز کم موضوع داره مثلا معروف اینطور است که اینجا افعال تبذیر است چون افعال تبذیر آتن باید بیشتر باشه مثلا میگیم این میز بزرگتر از اون میزه یا این آقا علمش بیشتره احلا اما در اصطلاحاهایون اشهر از مشهور زعیفتره نه اصطلاحایون یعنی اگر مثلا یه فقیر یه مشهور مشهور بین اصحابنا به خلاف اینکه یه علا اشهر قولن اشهر قولن تا مشهور. چون مشهور محنش اینه 17 ستا در یعنی هر دو مشهور هم یکی 4 پنج دست دیگه هر دو مشهور یکی یک کمی بیشتر داره یکی 48 دست دیگه 5 دو دستند اما هم. وقتی عرل مشهور این نمیتونم در برک کردین یعنی کتابی و قاله کلان مشهور و قال کلان علل اشهر اشهر زیفتر تا مشهور مشهور اصطلاحاً جای اصلاح میشه که هفتا در موافق باشن. یعنی باید در مقابل شاز باشه اما در باشه مقابلش هم مشهور این شعرانش بیشتره باید بیشتر باشه به داخلی خواهی تر باشه از کمیه که گفتیم گلاز اقوال فقها ها کمتر اقوالش قبیتش بیشتره نه اشهر کمتر. باشه خب حالا تیدارکیشو تقسیم کردن دو تا نکته داره باشه خب اونجا که بیشتر عموم که اونجا در مقابل شاذه اون افرادی که قبالتن شاذن اینجا در مقابل مشهورن میگه من نگفتم نمیخوام وارد این بحث بشم چون واضحه اینکه الان یه حالت مشهور است اگر کسی مثلا میگه صاحب مثلا میگه مسائل ادعای شهرت کرده و حال و قران ان ادعای مشهور رو قبیه هم میدونن تا ادعای اشهر رو. چون مشهور که گفت این در مقابل شازه نایره اما اشهر که گفت نه در مقابل اصطلاح خونم مشهوره این شهرت بیشتر. داره الان یه همین شهرت رو بسید کردن شهرت در روایت به معناه کسات نقله ها و یقابله شزوز و ندرت از کردن در باب مشهور و شاز دو تفسیر دو وجود داره دو احتمال داشت. یکی این که مراد از مشهور مثلا ده تا راوی داریم هر ده تا راوی یک مثالی از امام صادق نرفته این مراد مشهور. اما در مقابل یکیشون خیلی از این که این مثلا چیزی از امام صادق نرفته. مثلا یکیشون میگه بله من در سفر یک شد امام بودم امام اینو ببینید پس مراد از شهرت در اینجا با امام میساسه. این رو سر در اگل بکنید هم این دکتره دکتر روایت مقابلش ند نادر شاذه خب دقت کنید بخ اینه که کل ده نفر اون یک حدیث رو نقل یکی از اونام میاد حدیث دیگه نقل کرده مهارس پس لوقا شهرت ببین معناش شما گفته شده احتمالاً چون همین روایت عمر دهنگره مراد اینه چرا چون ما فرما خود به ما شهر رو و ده شاغ و نادر خیلی این مجمعه باید تبیه کرده لیکن اون معنای متعارفی که ما الان از مشهور داریم این نیست معنای متعارف ما از مشهور نه نفر یک مطبع نفر یکی خلا باشن نه نفر ظاهرا هم مراد از مشروع شهر از باید این باشه نه این حتما این یکی هم شریک باشه منپلده به قصد فرمونی پس مراد از مشهور اون خبریست که نه نفر معروف کردن اون خبری یک نفردن به معناه قلط ناغه به حاضر شهره مرجه ها این شهرت رو از مرجه ها قرار دادن این مرجه بودن بنابراین تعبودی میشه که الان فردان توضیحاتش رو عرض بخی استنادم کردن به مرفوعه زراره این اصطلاح مرفوعه زراره که در کتاب عوال آمده از ابن جمهور یا ابن جمهور چون بعض از امزاهاش که من دیدم ابن جمهور هم داره ابن عبی جمهور به من همیاره مرکومه جدش ابو جمهور بوده یا خالی بوده ایشون عبارات امزاه خودش هم مختلفه یک نواقع نیست الله و رحمته علایه حاله یشون نه وقت باستان دیگه داره عالمه عالمه مزمار و ساده است خود به مشهور بین اصحابش ما در بحث فادل صادقانه از کاری این ویار قطعاً باطل نیست که اکثراً بسیار روايت زریفیه اصلاً بحث نداره نه و دان این همون روايت آمرد نهنزله بود این از خیلی قرطبی و نشتریشون بوده برای زمانه و این ارزش و شبان ذکر روایاتی که در کتاب ابواللال آمده خیلی است چون یا از اهل سنت گرفته یا شیعه گرفته یا از یک مجموعه بسیار ضعیف گرفته خود هم کاملا در حدیث شناسی ضعیفه کاملا ازش ذکر ندارد و ما که مقبوله عمر بن حنزله من قولی علیه السلام ایشونش خود در مشهله بین اصحاب ذرا تو ذهنم خود در مشهله نداره خود در مشهره بین اصحاب فلم از مجمعه لاره بفی. و وده اینجا نشون بس رو که شازن ناده و بده شد بعد آقای خوی فرمودن که حق این که این جزء مرجعات نیست آقای خوی در انجام بازه چون مشهور بین علمای ما انصاف هست از بطر آقای نشون مشهور اینه و شهرت بین اصحاب اینه ما در بحث حجیت در بحث تعارض مفسلا تعرض کردن به این که این حدیث این حدیث شریف اولا اونطور که معروف است به مقبوله ادهی از بزرگان قبول نکرده این حالا خیلی مشهور شده مقبول محقق در معتبر قبول نداره مقبول معالمی کتابه که ما میکنم مقبول محقق در کتاب چیز قبول نداره در کتاب معارج در قصول مقبول معالم تصریح میکنه استناده لاروات ضعیفه خود اینجا محقق میگه لبایتون ضعیفه در اینکه این این اینطور نیست که حالا گفته شده خیلی این صحت و واقعیت روشن نیست تقریبا میشه گفت مثلا قرمه های بعد از علامه یک مقداری تو بحث تا آرز سعی کردن این رو بیارن یواشه باشنان نه همه و اما مثلا شیخ توسی در بحث تا آرز اصلا این رو بایتون در بحث تعارض نیوبوندن به رواده کلا. ما یه شرح مفصلی راجع به این مطلب عرض کردیم جاش اینجا نیست خیلی از مطالب در اینجا بختی شده در کلمات احلام. اینا اصل و اساس ندارن مثلا صدر این روایت که اصطبال نوز برای به شماستت میشه صدر این روایت صدوق نیوبونده صدر روایت را همه را جلی ها بنابرای ها مناظرتون که اصلا گلاده پقی اصلا شیخ صدو نهاره بکنه در مسائل اشتباه هم بوزن روال مشارف و برده و صدو شیخ و, و توسی, و و شیف توسی. شیف که این مشارف روایت رو و در هم شیخ و توسی شیخ چون ظاهره باید اینه که به بلایت نموزه در تقیی یعنی به قاضی منصوب در باب غذابت نبوده اصلا ایتون رو این از آن هم که کتاب ها چاپ میشه اصاب صدوق بودن یه مشاعر سراسین حدیثم از اوهامی ابحامهای در مثن حدیث موجوده من نمیتونم جوابه بخش کشم و شرح طولانی میخواست یعنی که بخش مربوده این اینطور نیست از کردم این روایت هایی شده برچوزیش میدم این فرزه اصلا ترجی فرز بکیه تحبودیه اصلا تعارض هم پرد به حجی تربودیه چیز رو ترجیح یعنی با دیگیم این حجی تربودن این حجی تربودن تعارض شده دارم اما اگه ما حجی تربودی رو قبول نکرمیم مثلا بغدادی ها حجی تربودی رو قبول کرداشن جزا در پیش بغدادی ها تعارض مطرح نیست ترجیح مطرح نیست <تصحنت> از کاری مرمون سید مرزا دل از در ازدریه اداره شما چار سفتن شده در تعارض بعزت اولاد مثلا در جوانای ما بردی یک دو جلد کتاب در طالب خب نوشتن. ما همین صد 400 500 نوشته میشه. میشه یکم تعارض حل وجه ما به حال وجه نیست. مشه اول ما. تمام بحث تعارض و تضجیه رو بدون کلمات خرد کردیم. پس بگذارید فرمودین حالا این شما ما فرض توضیح بیشتری نداریم یک اشکال ایشان به لحاظ این که یک اشکال اول ایشان چون دانیه یعنی نکته می‌خوام بعد مضافن الى عدم تمامیت کل میدن مرفوعتم المقبوله ایشون قبوله مرفوعتی ای خیلی ضعیفه از رساله ایشون بحث یادن بله و اما مقبوله فله عدم ثبوت رسا آقا اما هم هم زده راست ایشون قبول ندن یه روایتی هست ون با علینا ایشون فلا اون روایت ضعیفه دیگه چون آره من نمیخواب بایده بحثه اون روایت و عمران نه راست توصیق صریحی عمران نه نداره یعنی چون عمده ما توصیقات ما از نجاشیه محوم نجاشی متعرض ایشان نشده ازا بعض در دست ها باید خب این نه چون عمران نه هنزل کتاب نداشته نجاشی متعرض کسانشون کتاب داره نجاشی رجال نداره من در اون کرده اون در قوم به اسم رجال نجاشی شاب گره. کتاب نجاشی رجال نیست رجال نیست. این هم خود آی زمدیانی اما روزه الله نارهت بینه از این اسمی برای کتاب بودش اسم کتاب رجال مید که برم این اسم تازی چاک کرد اسم کتاب فیغرست مصنفات از خاب ناز و رفت کم به رجال نداره. امر این ام هنزل با این که نسبتا روایت داره و حتی بلی افتا اجلا از اونه هم بکنم زراره کتاب نداشته دقت میکنیم مطالب رو شفاهن اگر نوشته بوده نوشت. کتاب یعنی کتاب رو به شاگرداش نداده اگر کتاب رو به شاگردش داده و شاگرد به شاگرد اینطور سلسله در ما این کاری بود که بعداً اندیشه‌ساز بده این اجمالشه گفته ان شاء بله از عجایب روزگار ایشون برادر داره, داره همیه به من علیه بن حمزه حاصل ایشون چون کتاب داره و قلیل روایات نظر من نمیدونم تا نسل بده چون در کل کتاب مثلا تا 5 شاگرد با داشته باشه. فال و خیلی کم به بحث چون کتاب داره نجاشی متعرض شده نجاشی علی بن حنزله رو بوده چون کتاب داشته هم کرده گفت سقا اما عمر بن حنزله رو کلا نمرده این که از مواصیل داشت این ارواد زرش هیچ ارواد زر هم نیست به هر حال مبنای مرحوم استاد و رضا احمدی اصول چون استاد قالب رو تقیات حتی بر نه تجاوبت هم قائل نبوده اشتباه میشه بهشون قاعدم که حتی ما قاضی منصوب هم نیست فقید از طرف علمه نهست نشده با اون قضا را رجوع به قاضی را به اسطلاح یک امروه اغلایی میدونن نه تعبد شرحی خب اختلاف در جامعه خوب نیست با درستان برداره به یک قاضی حکمی که اون اختلاف را برداره یا به قاضی را مزید آها یک این میگیرن که تعبدی نباشه اغلایی باشه ایشون نه تقدر غلایت اشتماعی حتی غلایت قضا رو هم قبول ندن ایشون تقرید رو درست میدونن از مشه و رجوع به مشه در بعض از امور نادر نیسی این مسجد بدونه دیوانه بدونه ولی این اینجور چیزا و اله ایشون قضاوت هم قبول ندن که از کردن که این مبنای صدوق همه هست صدوق هم همین نظر را داد حتی قاضی منصول و های خوی خلاصه حرفشون اینه روایاتی که هست که خیلیشون رفتی به قضاوت نداره مثل علم و خلقا مثل رسول انبیان مضافم به زرف اصناد اون اونی که به درم میخوره این عمر ملحنزل هستی این سندش روشن نیست امتیشون میگه بلی این قاضی منصوب یه روایات عبی خدیجه از اون یه سندش مؤثره اما اون قاضی منصوب نیست یکی از توقیه مبارکه عمر حواسر واقعاً اینه ذریچه معلوم نیست مراد قضا واس باشه مراد اشکار فتواسوجو به مشهدی برای فتوا این خلاصه بحث آیه چون ما در بحث سُنن هم شما یک هفته دو هفته روی سرای کرد ما صحبت خیلی مفصل دیگه چون زمانی که عربی بود بحث بود چهار ساعت کشیده مرگومه استاد بحث بلایت تغلیق خلاصهی نظر مبارکشون اینه هم در بحث تعارض بین رو باید تمسک نمیکنن هم که بحث بلایت پای پس ایشان دو تا اشکال دارن یکی ان اشکال دومه امروز خوندید که سند هر دو به نظرشون ضعیفه مرقوم که اصلا من نخوندم بحث نباس مراجعه کشون خیلی ارزش قرار و اما مقبوله چرا ایشان در قبول ندارن یک اشغال دیگری هم دارن که ان شاء الله فردا توضیحش میدن. الله محمد